درس دو همه قسم ثانی النصب و این سلاسی مکسور الان موقعی میخوان از کلمه سلاسی که این الفلش که اینش کسر داره اسم نسبت یا اسم منصوب درست کنیم چطوری درست میشه اسم منصوب درست کنیم چطوری میشه ملک ابل دو ال میبینیم در هر تا این چه داره این کلمه کسر داره در ملک میشه ملکی، ابل، ایبلی، دوئل، دوالی این دو یک قادر سیار سادهی داره کل سلاثی مکسور العین هر سلاثی مکسور العینی تفتحو اینوه اندن نسر هنگامی که اسم منصوب دروس کنین این الفلش فتحه داده میشه ملکی، ایبلی، دوالی این الفلش چی داده شد در اسم منصوب؟ اس انوالفعل چه داده میشه این قاعدش خیلی ساده بود بریم بحث بعدی انصب الى الثلاثي محذوف اللام موقعی که می‌خوام اسم منصوب از ثلاثی محذوف اللام ثلاثی حرفی لام و لام کلمه حذف شده است بله موقعی میخوام می‌خوام نسبت بدیم به اسمی که ثلاثی هست و لام الفعلش حذف شده یا به عبارتی اسم منشئ درست کنیم از ثلاثی که لام الفعلش حذف است ید دم اب سنتون. ما دیروز گفتیم که ما اسمی که دو حرفی باشه نداریم و برای این که تشخیص بدیم کدوم حرف از این کلمه هست شده باید به مصنع یا جمعش برمیگردیم آ؟ در اسم خب میبینیم که از اینا حرف از ید یا هست شده دم یا یا واو هست شده از عب واب هست شده از سنتون هم واب هست شده از ید یا هست شده از دن هم بعضی میگن یایی بعضی میگن واب خب در هر صورت مسنه هاشون آورده به خاطر که تشخیص بودین چه حرفی هست فسن ولی یه چیزی دیگه هم هست یه چیز دیگه هست لام لام در تصمیه در بعضی کلمه ها بر نمی گرده مثل یدان و دمان یدان و دمان با وجود این که یدان و دمان مصنع هستند تصمیه هستند اما می بینیم که باز هم لام الفل بر نگشته خب بیایید روی قاعده این بحث ایزا نسبه الى سلاسی محضوف محضو اللام زمانی که نسبت داده بشه کلمه سلاسی محضوف اللام یعنی میخوام اسم نسو درست کنیم از سلاسی کلام لام الفلش هست شده جاز رد اللام و عدم ردها جائز هست برگرداندن اللام و عدم برگرداندنش هر دو تا جایزه. عندما اللم یردها في التثمیتی اوه الجمعی نزد کسی که بر نگردند آن رو در تسنیه و جمع. یعنی کلمه‌ای که در تسنیه و جمع. در تسنیه و جم لام الفل برنگشته در اسم منصوبش هم جایز که ما لام الفل رو بر بگردونیم و جایزه که بر نگردونیم مانند دو سال اول یاد دامه در مسند ما می‌بینیم که لاملفل بر نگشته یادان و دمان. اینجا در اسم منسوولش ما می‌توانیم لاملفل می بر و میتونیم بر نگردونیم. می‌توانیم بگیم یادویی، می‌توانیم بگیم یادی، می‌توانیم بگیم دمانی، می‌توانیم بگیم چی؟ دمی. و واجب رد این دمان یا ردهها فیه همه. و واجب است برگرداندن لاملفل نزد کسانی که برمیگردانند می‌گردانند لاملفل را در مسند در عب که تسمیهش ابوان هست یعنی واو برگشت برگشته و سنتون که واو برگشته سنا اینجا هم واجب است که در اسم منصوب واو چه بشه برگردانده بشه ابویی و سناوی این اسم منصوبشون رو تلفظ نمی‌کنن در دی در دام هستیش دیگه نمیونه این محض حفظ للمتون اینا نمیخواد خونه ما اگر در تصمیه لام الفل رو بر میگردونیم واجبش میدونیم که لام الفل بر بگرده در اسم منسوب هم باید چی بشه بر بگرده, آه آه آه کسی بر بگرده. این بود یک قاعده بسیار ساده بازم اما برویم اسم نسبت رو از مركب و مصنع و جمع هم بیاموزین امروز النسب الى المركب والمصنع والجمع بدر الدين در اسم نسبتش اسم منصوبشیم میگن بدری صدرش دروس شده این مراکب اضافیه بدر الدين مركبه اضافیه اسم نسبه اسم منسوب از چش درست شده ابو سفیان ابود رو زیاد داریم اگر ما بیایم از ابو درست کنیم خلط میشه قاطی میشه چی میشه پوشیده میشه از قسمت دوم اینجا درستش میکنیم صفیانی ابن ایاس ایاسی عبدالرحمن دیگه از عبد که مخلوط میشه میگیم رحمانی عبدالحمید حمیدی بعلبک بعلیج اینجا از صدر درست میشه در مرکب مزجی از صدرش درست میشه در مراکب اضافی ما میتونیم از صدر درست کنیم اگر ترس پوشیده شدن و قاتی شدن نبود ولی در مراکب مزجی نه در مراکب مزجی از صدر درست میشه بعلی جادالمولا در مراکب اسنادی هم از صدر درست میشه جادی این جادالمولا در اصل جمله ولی الان شده دیگه اسم علم مارد که مرکب اسنادی هست خب این بود از مرکب ها انواعش اما از مصنع و جمع شاهدان شاهدی از مفردش درست شده مهندسون مهندسی از مفردش درست شده کتب کتابی از مفردش درست شده انصار از خود لفظش درست شده چون انصار درست در اثر علم نیست ولی الان دیگه علمه بر, یک بر یاران پیغمبر اونایی که اهلشی بودن مدینه ابابیل، عبابیلی قوم قومی شجر شجری در قاعده میگه قاعده دویست و بیست و یون الى صدر المرکب الاضافی اذا امینا اللبس نسبت داده میشه به صدر مرکب اضافی یا به عبارت دیگه اسم ننصور درست میشه از صدر مرکب اضافی زمانی که امنیت باشه از قاتی شدن از پوشیده شدن و ایلا نصب الى اجزيhi و اگر نا اسم منصوب از اجزش درست میشه مانند سفیانی و یاسی و رحمانی و حمیدی که از اجز مرکب درست شده اند اسم منصوب و این قسمت دوم مرکبه مرکب اول شو میگن صدر بعدش میگن اجز وینسبی به صادر مركب مزجی و اسنادی. و اسم منسوب میشه از صدر مراکب مزجی و اسنادی که اینو در امثال توزیع دادیم نسبت دادیم شی به صدر مراکب مزجی و اسنادی. یکی رو میگن اسم منسوب کی رو میگن منسوب ایله. مثلا موقعی که میگیم تهران، تهران رو گمیان منسوب ایله. یعنی ما میخوایم یه نسبت به تهران اضافه کنیم و اسم منسوب ازش درست کنیم. و این علام بعد از این که اسم یای نسبت بهش اضافه میشه میبینیم که عمل انجام میده دیروز هم گفتیم اون موقع دیگه تبدیل به صفت میشه بیایید قاعده 228 یون سبو الى, الى محرد المسنه والجمعن در ارادت النصبه الهما نسبت داده میشه به مفرد مصنع و جمع ها هنگامی که اراده نسبت داشته باشیم از مصنع و جمع مثلا موقعی که از شاهدان میخواییم اسم نسبت به اسم سوز روز کنیم دیگه نمیگون شاهدانهیه بلکه از مفردش که شاهد هست شاهدی مهندسون مهندسی الا اضاکان الجمع و علمن مگر اون جمع علم شده باشه مثلا انصار هم جمع انصار چیه؟ جمعه ولی الان دیگه چه هست؟ علم شده دلالت بر گروه خاصی میکنه پس اینجا دیگه انصار بروازن افعاله مثل اطفال اسمه جمعه دیگه اینجا از خود جمع درست میکنه توی علم شده انصاری او شبیهن به الالمیات زمان که شبیه به علم باشه ماننده هر کلمه‌ای که شبیه به علم شده او لم له مفردون یا کلمه که مفرد نداشته باشه مانند ده ابابیل معنان ده چی؟ ابابیل ابابیل درست جمع است ولی مفردی نیاره که اخی ما از مفردش چی درست کنیم؟ اسم منصوب درست کنیم لذا خودش درست میشه ابابیل و بریم جلوتر اولا فإن النسب يكون الى لفظه این ترجمه آره فرق گروه گروه ترجمه غروب فان ان ننظر یاک ایی میگه نظر اینجا به میشه؟ به لفظش میشه موقع ما منصول درست میکنیم یا نسبتو به همون بهمون اضافه میکنیم دیگه مفردی نداره. و اون صبح اه اسم جمع و اسم الجنس جمع. هم همچنینیم در اسم های جمع مان قوم رفت قبیله اسم های جمع هم موقعی میخوایم. اسم نسبت از شون درست کنید اسم منصوب از لفظشون دیگه میگیم قومی بله این اسم جمه به این, این نوع کلمات میگن اسم جمع مفرد ندارند اسم جمع اونی هست که از لفظ خودش مفرد نداشته باشه مانند قوم رهد بله بس اه اه و نسبت داده میشه به لفظ اسم جمع یعنی ما میخواستیم از اسم جمعی اسم منصوب درست کنیم یا این نسبت رو به همون لفظش اضافه میکنیم قومی درست میشه و اسم الجنس الجمعی و اسم جنس اسم جنس دلالت بر دو نفر بکنه این هم میگن اسم جنس جمعی اسم جنس جمعی اونی است که دلالت برچی کند بیشتر از دو نفر مثال شو آورده شجر که اسم منسوبش میشه شجری یا مثالی در آورده ماننده کلم که مفردش میشه کلماتون خب این بود از قواعدی که مربوط به اسم منصوب بودند اما نمونهایی رو آورده جزیره جزری نمیمه نميمي زويلا زويلي بثينى بثنيك خويلا خولي قتيطع قتيتي لابق لابقج لابقك وعل وعلي ابد اي این هم همونو بود که سلاسی بود که این الفیلش داشت ایدتون ایدی به خاطر این که در فاعل فعل هست ازلام هست نیست که ما برش بگردونیم ابن ابنی او بنوی، اخ اخوی ابو هوریرا قسمت دوونشتون این مرکر هست هوریری ابن العزیز الازیزی مدرسه تجارتی این هم مرکب اضافی هست تجاری بنی سویف سویفی رام الله رامی اردشیر اردی چون این مرکب مزی هست المدائن المدائنی چرا المدائن باوجود اینکه جمع هست ولی اسم منصوب از درست میکنیم بخاطر اینکه علم شده اسم شهری هست المدائن در ایران بود انمار انماری العلماء مفردش درست میکنیم چون جمع عالمی از ساعت از مفردش درست میکنیم از ساعی غنم غنمی اینب اینبی این بود البته تجیلی براش نهارده بود برم. باید بله باید بله تزیل تزیل باید یعنی همون باید تزیل دامنه باید همون ادامه باید میاد باید دا دامن باید تزیل باید باید باید تزیل باید زیرنویس رو هم میگن تذیل دامنه رو ادامهش یعنی یه تذیلی بشه زده یک پاورتنی بشه زده زیرنویسی بشه زده یه چیزای منده که اینا رو توضیح میده میگه عربها گاهی موقع از نسبت بینیازن بیان اسم نسبت رو بایاد درست کنند بر وضن فعالش درست میکنند و این است که دلالت بر حرفه کنه غالباً مانند نجار و حداد به جای این که بگن نجاری و حدادی میگن چی؟ نجار حداد یا بر وزن درست میشه یا بر وزن فائل مانند تامر و لابن تامر یعنی صاحب خورما لابن یعنی صاحب لبن مثلا به جای این که بگن لبنیک تمری میگن تامر و لابن یا تعیم و لبس و عمل و نهر تعیم و لبس و عمل و نهر به صاحب تعام و لباس و عمل و نهار میگن و به بخ... این خاطر میگه بینیا سودن از نسبت به این اسمها به وسیده یا مشدد این هم نقطه جالبی بود میگه همیشه این نس... اسم منصوب در عربی به وصیل یای مشدد درست نمیشه گاهی موقع اصلا نیازی نیست که اسم منصوب درست کنن بر... با یای مشدد کلمه بروزن فعال دلالت بر چی میکنه؟ نسبت میکنه مانند نجار موقع که نجار یعنی اونی که؟ موقعی بروزن که بله بله این فعالی رن البته